بسم الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد بحث های در مورد و روش ادای درست حج بحث های دیشب در این مورد گفته شد مختصرم دوباره این مروری مختصر در حج قبل از هر چیز نیت خالص فرض هست اگر کسی حج را انجام بدهد اما هدف رضای خداوند متعال نباشد یا ادای اون فریزی که بر من هست نباشد چنین حجی در نزد الله رب العالمین پذیرفته شود و اون ثمرات و برکاتی که در حج حاصل می شود قطعا آنها رو حاصل نمی کند نقطه‌ای ای که در آیه قرآنی دیشق گفته شد خداوند متعال می که لیشهدو هدو منافع لهم درن اون منافع خود را خودشان ببینند یعنی اون کیفیتی در حج هست اون کیفیت ماندگار کیفیت ها زیاد حالا کسی سخرانی میکنه سخرانی زیبا میکنه قلوه ها تکانی میخورند یک وجدی در انسان می‌آید حالت دیگرگونی ایجاد میشه اما این حالت لحظه‌ای هست شاید همون لحظه هست یا یک تا دو روز بیشتر ماندگار نیست اما کیفیات حج اینجوری نیستن یک بار اگر حج کرد تا پایان عمرش این بیقراری در قلبش وجود دارد. اون اثرات و برکات را در زندگیش مشاهده میکند پس حج با تمام چیزها متفاوت هست یک کار عملی و حکمتهای خیلی زیادی است چونکه حالا این خود این کلاس ما گنجایش حکمتها و ها ندارد چون احکام تمام نمیشن در کل حکمتهای حج خیلی زیادند که خداوند متعال دارن دعوت میدهند انسان را به طرف مکه مکرمه شهر مکه مکرمه افضل بقای عالم از بهترین سرزمین در کل عالم خاکی سرزمین مکه مکرمه هست. هیچ جای دنیا از مکه مکرمه افضل تر نیست الا همون جایی که نبی کریم مدفون هستند ده محل قبر نبی کریم خون سوا است مگر از دور مکان جای دیگر عالم مکه مکرمه افضل ترین نقطه های عالم هست. پس بنابراین حج و محل مکه مکرم اللہ در میخوانند مردم بیایید حج بکنید تا فواید را خودتان ببینید برای خود شما این فوائد هستند بیر حالا گفتیم که حاجی وقتی میخواهد حج بکنند نیت نیت خالص از همین جا حرکت میکنه فقط نیت این واشه که من حج را برای رضای الله انجام دهم اون سمرات و برکات حج را بعد میبینه. اگر نیت ایماش من برم بشم به ببین بگه حاجی فلان پس در نیت ما اشکال هست. از امروز بروز ما حجی درست نیست. اگر کسی گفت حاجی یا نگفت نباید ناراحت میشین. گفتن گفتن اگر هم نگفتن نباید ناراحت میشین. چون ما حاج را خاطر نام نکردیم. اگر ناراحت شدیم قطعا بدون در نیت ما اشکالی بوده چرا ناراحت ناره هر روز نماز می خونید بعد نمازی فلانی هر سال روزه می گیرید روزایی فلانی این یک فرضی هست داریم انجام می به هر حال نباید روی این نام روی اهداف دنیوی نباید انجام می هدف هداف فقط اون رضای پروردگار باشد الله رب العالمین همه ما و شما را بار بار زیارت حرم نصیب فرماید بحث های گفتم دوباره مختصرا ادامه میدیم کسی که میخواد تمتو بکند حج تمتو مختصرا میگم حج تمتو به حجی گفته میشود که در ماهای حج در ماهای حج اول عمره انجام بدهد مای حج همین مایی که ما قرار داریم مای حج هست مای قبل از ما قبل از این ما ماه گذاشته بعد از رمضان مای حج بود و ماه بعد هم ماه حج است این سه ماه ماه حج شوال زیقاده و ده روز زل حج ماه حج اگر کسی در این بوده بعد از رمضان عمره انجام داد و بعد از عمره حج کرد حجش میشه حج تمتو حج تمتو شد احکام ای داره برای قربانی و احکام بعدی آن پس حالا چون امومن حج های ما تمتو هستن الا بعضی افراد حج قران میکنن علما باشن که میدونن حقامش را حج قران انجام میده حج قران یعنی عمره و حج را در یک احرام انجام میده از روزی احرام میبنده تا پایان حج از احرام بیرون نمیآید اون هست حج قران. اما اون که مالاله سخته بر خیلی مردم خیلی دشواره چون حقامش سنگین تره و پس ما حج تمتع اول عمره پس در تمتع اول انجام عمره عمره انجام میدین از همین جا از فرودگاهی که میخوان سوار بشین لباس احرام را میپوشن لباس احرام. قبل از احرام غسل کردن سنت هست اگر رسیدین فرودگاه و فرصت نبود و غسل بودیم بودین فاللباس رو بپوش سوار بشو دنبال حمام نگرد چون از پرواز جا میفتید و حجم باطل غسل کردن سنت هست و مستحب بیشتر نیست غسل میکنیم بعد از اون لباس احرام پوشیده میشه دو دست چادر هستن یکی پایین میبندیم یکی بالا میپوشیم تمام لباس دوخته با از بدن بیرون میشن از زیر پیراهنی هست شرط هست تا دوخته ای که سانا میپوشن لباس دوخته باید در تن نباشه اما لباس دوخته جون نیست که این احرام گوشش دوخته باشه بعضی نمی‌فهمن می‌بینن که گوشه لب دوزی کردن احرام را فکر میکنه این دوخته این دوخته نیست لباس دوخته یعنی لباس‌هایی که ما داریم می پوشیم این لباس دوخته یعنی. اگر همین لباس بیرون کردی همین لباس پوشیدی اگر بیرون کردی فر روی عورت پیچیدیم بعضی احرام درسته. یعنی این لباس دوخته را به این شکل نپوشید یعنی این خاطر میگن تا متوجه بشی بعد حساس نباشی بعضی میرن حج میبینن که احرامش لبدوزی هست بعضی میگن او لباس دوخته هست این احرام درست نیست این اشتباه این نیست احرام دوخته واشه اشکال فرل فقط اند پیرهان دوخته رواشه مان اند پیرهان اگه همین شلوار هایی که داری به طور مسالتی سیدی جای و پروازم اشتباهی خاص مکه مکرمه اشتباه راست ممک جای احرام نداشتیم راهش آسونه لباس رو بیرون کن و همین شلوار رو روی آورد بپیچ بعض احرام شما درسته فقط نپوشش بپیچش احرام درست میشه این باید بدونی ما چه کار میکنیم پس برای دو دست لباس میپوشیم بعد پوشیدن لباس غسل کردیم میپوشیم دو رکعت نماز نفل میخانیم و اگر پاک بود خانومی اگر پاک بود میخاند اگر خانم در مذیبیت ها بود نماز نفل را نمی نماز نفل هست هنوز هم در احرام نیستی فرودگاه تور کد بخونی سوار بیشی احرام بعد نیت شده میشه وقتی که نیت کرد اگر عمره هست نیت می که اللهم اینی ارید العمرتا فیستیرها لی و تقبلها بار باری من اراده عمره دارم خدا یا آسان فرما و از بپذیر این شد نیت اما هنوزم شما در احرام نیستید بعد از اون دوباره تلبیه خواندن واجبه باید یک بار خاندی بشه تا احرام درست بشه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت و الملك لا شریک لک احرام بسته میشه شما در احرام شدید احرام که بسته شد تمام ممنوعات میآیند عطر نباید استفاده بکنید ناخون نباید بگیرید مو نباید بکنید کشتن حیوانات هم ممنوع میشن مقاربت با همسر هم حرام میشه نگاه کردن به عورت خانم هم جائز نیست هنگام احرام اینها کل ممنوعات شروع میشن و تلبیه گویان آغایون با آواز بلند لبی که اللهم لبیک برتب اینها رو صدارو صدا رو بلند بکنم خانم بگن اما آهسته نبا صدای خانم را نامحرمی بشنوید از میغات عبور میرسید جده جده که رسیدیم در جده منتظر میشی تا اتوبوس هایی که حامل حجاجان تامک مکرمه ساعتها طول میکشه ایک ساعت نہ ساعتها در فرودگاه جده منتظر میمانید از امروز بدانی منتظر میمانید یک ساعت دو ساعت سه ساعت تا کہ سرویس شما، اون ترتیب هست اونجا آمارگیری هست تنظیم ویزاها هست و تا دواره حضور ریاق در سرویس ها خیلی زیاد منتظر میمانید اونجا حمام زیاده یک استحمامی داخل جده انجام بدیده این استحمام سنت هست چونکه اصل استحمام باید در مکه باشه اما چونجا فرصت نیست همینجا دیگه فرصت هست یه غسل میکنید سوار اتوبوس و تلبیه گویان به طرف مکه مکرمه حرکت میتونید اما این نقطه اینجا هست گاهی بعضی افراد بچهای نابالغ نوزادارا با خودشو میبرن هاججی الا اینجا که خیلی کم اتفاق میفته الا کسی که اوغان و خوب باشه اما جاهای دیگر از پاکستان که خیلی زیاد اتفاق میفته نوزاد بردن نابالغه اگر بچه نابالغی رو با خودش حج برد احرام شو ببنده اگر میدونست بش بگو این کلمات رو بگو احرام تو ببند امانند خودش وعده کنه تا انجام بده اگر خیلی کوچک بود نمیدونست احرام شو ببند و رو هم حملش بکن خودت نیت بکن و خودت کاراشو انجام بده حج میشه اگر این بچه نبالق چیز ممنوعی را انجام داد، جریمه ای هم ندارد. اما حج فرضش عدا نمیشه. بعدهاک بالغ شد و دوباره حج برواد. ایه بین پرانتیزی بود. حالا هرکر میشه به طرف مکه مکرمه. وقتی که میری مکه مکرم در مسیح تلبیه گویان, لبیک اللهم لبیک. تلبیه گویان میری مکه مکرمه. سنت علمای سابقین انویاء صالحین همین بوده که قابرانه در مکه وارد می این تعظیم حرم مکی هست پاب وارد می و داخل مکه می رکھتن. حالا اگر رفتی مسافر خونه اول شما رو برده مسافر خونه گایین جوری می کمی برمستقی مسافر خونه و سالح رو می اونجا اگر فرصت شد یه غسل اونجا بکنید اگر فرصت شد اگر هم نشد این نیست واج نی. اگه اونجا انجام بدید دواره به طرف مکه به طرف حرم حرکت میتونید میرسید مسجد الحرام مسجد الحرام که رسیدید با, پا، با پای راست وارد مسجد میشید اما بدونید در حرم الهی هستید حرم از نزدیک حدیبیه نزدیک جده شروع میشه اونجا تابلو هست تابلوهای بزرگ زده که ابتدای حرم هست این حرم الهی خیلی باید معاظه باشه و خیلی تعظیم کنید حرام را. احترام حرام را به جا بیاورید. بی احترامی نسبت به حرام جایز نیست. گناه در حرام گناهش خیلی سخته. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه می که من یک گناه در مکه بکنم برابر است با پنجه گناه که بیرون از مکه انجام میدم. گناه مکه سنگینی، خیلی معاظه باشه احترام سرزمین حرام الهی رو. از زمان حضرت آدم این مکه محل حج بوده و تا امروز این حرم هم وجود دارد پس با پای راست داخل مسجد الحرام وارد وقت وارد شدی از جایی که بیت الله رو دیدی همونجا توقف اول که وارد شدی دعا می‌خونید الله مفتحلی ابواب رحمتک و استحل لی ابواب, ابواب رزقک این دعایی که اینجا هم می‌خونید الله مفتحلی ابواب رحمتک این دعا رو بخونید و به استید و دعا بکنید دعا کنید دست هارو بلند بکنید هرچی میخوای از الله رب العالمین بخواهید وقت خواستان از وقت اجابت دعا هست بعد میری جلوتر چون که شما حاجی هستید بر شما تحیط المسجد لازم نیست مشغول تحیط المسجد نباشید اگر فرصت بود بستگید توابو شروع میکنید و اگر فرصت نبود منتظر اگر فرصت نبود میدونستید که وقت نماز هست پس توقف کنید میتون حالت به یه تلمستید بخوانید به شرطی که وقت مکروه نباشه یعنی بعد فجر نماز بعد فجر نباشه تا تلو افتا بعد نماز عصر نباشه وقت زوال نباشه پس بنابراین اونجا که رسیدید اگر فرصت بود تواف را شروع میکنیده این بدون در تواف کردن هنگامی که رسید اونجا یک نیت اعتکاف نفلی بکنی من در اعتکاف نفلی اینجا هستنگ نیت مختصری هم اگر کردی بهتر است بعد وارد شدن در مسجد الحرام می نزدیک بیت الله و تواف را شروع میکنید بی علی بیت الله بیا یه هم بگم در مسجد الحرام این بیت الله هست اینجا داخل ویسلا حرام که حسیب کل این به مسجد در مکه مکرمر هنگام نماز خواندن باید مستقیم به طرف کعبه نماز بخاندن اگر اینجا استادی و انجوری استادی نماز شما باطل هست مستقیم رخ کردن به کعبه فرض هست اینجا اگر کسی اینجا استاد و اینجوری استاد روخ به طرف حتیم کرد این حجر اسماعیل که نوشته بهش حتیم هم میگم اگر اینجوری استاد یعنی صورت به طرف کعبه به طرف حتیم شد نماز باطل میشه روخ کردن به طرف کعبه فرض هست و الحمدلله اون نقشه هایی که اینجا کشیدن خط های کشیدن و سنگی که بردم کامل به طرف خود کعبه هست اما بالفرض اگر به خاطر ازدهام کسی اینجا ایستاد، و کامل روخش مستقیم شد، اون طرف رفت، به طرف این کابی نشد، اینجوری مستقیم، اون طرف رفت، اگر به کابی نشد، نمازش باطل است. باید اینه بدونید که اینجا فرض هست، باید مستقیم روبی که کعبه نماز بخوانید. و حالا هنگام نماز خواندن هم صفا خلقه میشه. امام عموما اینجا میسته، محل امام اینجا هست. حالا اینجا اگر اینجا شما بودید. نباید در این مح... محدوده از اینجا تا اینجا از امام جلوتر باشید. اگر از امام جلوتر بودید نماز شما باطل میشه. اما اینجا پشت... پشتش و اون طرف اگر نزدیک دیوار بودید از امام نزدیک تر بودش خالی ندارد. فقط از این گوشه تا اینجا نباید از امام جلوتر باشید. جلوتر باشید نماز شما درست نیست اینجا. پس بنابراین هنگا نماز خیلی باید موازید باشید خلا ما داری نماز میخونید چون باید نماز را درست قدا میکنید هنگامی تواف را انجام میدین ازدخام هست جمعیت خیلی زیاد از جلوی نماز گذار همینه دار نماز میکنه کسی مشغول رکو هست کسی مشغول سجده هست کسی داری نوافل میخونه مشغول نماز هنگامی تواف میکنید از جلوی نماز گذار رز شدن هست. گناه نیست چرا؟ چون که خود تواف مثل نماز هست وقتی دارید نماز میکنید جلو هم دیگر میستید اشکال ندارد تواف مثل نماز هست پس اگر دارید تواف میکنید از جلو نماز عبور کردن جائز هست اما اگر تواف نمیتونید میخواد برید بیرون یک تردد در حرم تردد هست هنگام تردد ازدهام زیاده شما میخواد برید بیرون کار دارید و مردم مشغول نماز ها. از محل سجده اش جای سجده میکنه باید قطعا اینو رد کنید از جرای سجده نباید باید رد بشی یک سجده و تا دو سجده تر عبور کرید و برید محل سجده گذار تردد در هیچ حالی جایز نیست مگر اینکه شما مشغول تقوا باشید اگر مشغول تقوا مودی از درو سجده هم اشکال نداره اما در غیر این صورت باید محل سجده را رد کنید ازده خیلی زیاد این بشکه خیلی زیاد پیش میاد هل لحظه اونجا نماز گذار هست پس بنابراین در غیر از تواق باید محل سجده را رد کنید یک سف دو سف جلوتر میتونید تردید بکنید و بری جلوتر برحال پس این تا اینجا ما احکام اولی هستند شما میرسید اینجا وقتی که میرسید به سلا داخل حرم هفت دار هفت دار کنار بیت الله چرخیدن یک تواف میشه پس هر تواف عبارت است هفت دور چرخیدن هر دور یک شات نام دارد یک شات یک دار بیر یک شات دور بعدی شات دوم تا هفت دور میزنید بعد میشه یک تواف بیت تواف روش تواف این است که نیت فرضه اگر نیت نکردی تواف تو شما درست نیست. پس اینجا میرسید نیت میکنید. نیت چی او کجا میستید؟ نگاه اینجا. اینجا میستید. یعنی باید حجر اسوال سمت راست شما باشه هنگام نیت کردن. دیشا هم روی همین بحثی شد که سمت راست سمت چپ. بازم سمت راست باید باشه. وقتی که شدی سمت چپ شما قرار میگیره. تا نیت نکردی باید حجر سمت راست. مثلا به طور مثال حتی بعضی باید بگن که این مسئله باید اینجا دیگه برای شما حل بیسی حالا اصلا اینجا هست خود حجر این اینستور ما فرض کنی حالا این نیست اینجا فرض کنی اینجا حجر اصوات باید اینجا میسی قبل از آمدن به حجر اینجا میسی یعنی سمت راست ما حجر قرار میگیرد. نیت بیکنی که ای دارم. بار الله آسان بفرما و از من بپذیر بعد که نیت کردید رو این خط میستید اونجا که شما نه میبینید و نه فرصت هست تو اینقدر حال میرسید و شما رو ها اونجا حال میدن که اونجا نمیتونید بعد آماده باش کامل باشید اول از اینجا باید نیت بکنید بعد اینجا ایستید. بعد مستقیم روی حجر اسود دستهار بنا تکبیر تحریمه روبروی حجر اسود هم بولند میکنید اونجا هم میگی بسم الله و الله اکبر لا إله الا الله و الله اکبر ولله الحمد و صلوات و سلام علی رسول الله اللهم ایمانا بکن و وفاءن این ها دوای طولانی هست نمیتونی یاد بیگی میتونی یاد بیگیری اما اگر نتونیسی اشکال نداره همین بسم الله الله اکبر ولله الحمد هم کافیه بس بس روی رو به حجر اسود بسم الله الله اکبر و الحمد قرار میدهیم و اگر فرصت شد میری جلوتر این هست اسوال این فرصت هم گیر نمیاد. مگر زمان گیر میشت ما اول قبل از دل بیستم این ما اونجا باشیم دهم اونجا باشی خلوته این وقت شاید بتونیم یا آخر آخر آخر تمام مردم حجاج برمیگرده در ماه محرم شاید فرصت باشه. این ایام فرصتی برای استلام نیست اگر فرصت بود یه میری مستقیم این حجر اسود دسته ها رو روش میذاری معنی سجده کردن در سجده انگوشتا ور بسته بشن دسته رو میذاری باید میبوسی با احترام اما چون که هجر اسود رو عموماً اطل میزن این مؤثر است. این محفظه نغرهی که روی شد این هم مؤثر است. چون شما در احرامی پس مواظب باشید که دسته شما ار اخر نشن اگر محبتر بشم جریمه باید جریمه پرداخت میتونید پس اگر کرساز شد می میگوستید پس این هست بوسیدنش. اینجا میشه استلام اول تواف شروع میشه از پشت حکیم تواف از پشت حکیم تواف میکنی می میرسید اینجا این هست رکن یمانی این گوشی است رکن یمانی اینجا فقط دست راست را کشیدن بسم الله الله اکبر دست میکشید بس بوسیدن جائز نیست تنها محل بوسیدن این گوشه هست جای دیگر نمی این دیوارها را نمی بوسید ویل خائلو نمی بوسید در هم نمی بوسید تنها اینجا ثابته جای دیگر بوسیده نمیشه اینجا فقط در این گوشه دست میکشید بسم الله و اکبر بعد هم بوشیدن در کانیز نیستو، دوباره میرسید اینجا اینجا که رسیدید یک شاد کامل شد دوباره همین کارو میکنید بسم الله الله اکبر ولله الحمد و دوباره حرکت اول محل بوسیدن رو میبوسید اگر نشود حرکت میکنید دوباره میرید از بین این نیم دایره که اینجا درش بازه است هم بازه است عموما ام میبندن اما اگر باز بود چون که چیزهای پلاستیکی می اگر باز بود حاجی خیلی زرنگیکر از اینجا خود شده، داخل از او بیرو شده، این شوتش قبول نیست، اونجا زرنگی نکنی دیگه، آرام آرام بریم، و بامتانت، و هنگام تواف کردن هم، ذکر خواندن بهتره، اما ایک هیچ چی نگو، سکوت کرد و تا این جائز توافش درست هست، حالا بعضی اونجا توافی کن، فقط اینجور نگاه می کنن، بیتون لار مالا نگار نکن، سب شما دارین سنگها، سنگ ها، اینا کار نمیتونن بکنن. فایده هم نمیتونن برسونن. اون امر الهی رو داریم ما انجام میدیم. تجلیات را رو داری انجام میدیم. پس سر پای، نگاه کرده اشکال نداره. آ همینش اینجوری بخاید به چرخید این دیگه درستی نیست. خلاف ادغ هست خلاف سنت. سر پایین، گرفته تو وا احترام، توافر انجام میدید. دوباره رسید اینجا همون کارو میکنی. دوباره بھی رسرنجا دوار همون کار استلام این شد شو شوت دوم استلام می کنید هفت دور به همین صورت انجام میدید این میشه یک طواف هفت دور شد طواف شما تمام دواری کی دور هفتم تمام شد دوباره استلام می دو دوار استلام را انجام میدید مجموعاً میشن چند تا یک اولی و یک آخری میشن هشت هشت تا استلام هفت شاد با تا استلام انجام بینید بعد از اون که تمام شد حالا شما دیگه تواف شما کامل بعد از اون درکت نماز خوندن پشت این مقام ابراهیم ام صورتی که مقام ابراهیم و سلواشی پشت دکی به حبتی که جا هست نماز تواف واجبه بعد از هر بعد از حد نماز واجبه اما در این محبت نماز خوندن مستحب دی. اینجا واجب نیست که هج اتنی پشتی بخانی در کل حرم در کل مصدور حرم میتونی بخانی اگر فرصت شد اینجا بخانی اگر نشد جاهای دیگر درکل نماز واجب را باید بخانی چونها واجبند که انجام باید جدید وقتی که تمام کردی درکل نماز را میری چاہی زمزم چاہی زمزم شما نمیمینی الان محدود چاہی زمزم اینجای الاسب شاید زمزم تقریبا این محدودی بوده اون زمان های این قسمت بوده حالا که قلن زیر به سلام مطاف قرار داره و چای زمزمی نمی بید. اما هر قسمت حرم آب زمزم فرامانه ولی آب زمزم می نوشیده تا می آب بخوری آب زمزم خیلی سبوک هست و مؤمن خیلی زیاد میتونه بخوره بخوری و منافق هم نمی آب زمزم بخوری خیلی کم می بخوره مؤمن حیث جا علا میرین انشاءالله که میبینید ده بار بخور ده لیوان بخور هم سیر نمی کنید و بازدهی هم نداره تمام این آب جذب بدن میشه جالب این یکی آق زمزه هرچی هم بخوری این دوباره دیگه باید جذب بشه جذب بدن میشه ازیاد هم نمیشه پس وقت بعد از اون میری برای آق خوردن ای دیوان این دیوان حالا اینها محل آقاهای خونک زمزم ریوانه می گیرید روبی قبل می ایستید رسول الله الله فای خوری بعد انجا دعا می خونید و دعا شده اللهم اینی اسألوک علم و و رزق واسیه و شفاع من قل دار این دعا از دخولید این دعا می خونید آب زمزم بخورید حالا ده ریوان بخورید هرشت بیتونی بخورید و می هم بخوره سیر هم باشی باز می تونی آب زمزم را بخورید اما هذا يجب أن توافقه الله يجب دعا تدعى سنة ودعاها هل يجب أن تدعى توافقه الله؟ قل عندما تدعى الغنجال الركنية مالي تأتي الغنجال ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع الله ونرخي همین دعا ثابت تست این اونجا بعضی کتاب چه دارن حالا گروهی گروهی دعا میکنن بعضی تکرار میکنن اینها ثابت نیستن شما هم جذبی نباشید تو میبینی ما شاء الله یک گروهی ان داره میخونه خیلی زیبا یک نمایشه خوبی هست شما متاثر از این نمایش ها نشید یا بعضی دیس نفر سی نفر باهم حلق میزنن کسی میخونه اونها باهم میخورن آمی میگن میکنن قواقا میکنن. اینها ثابت نیستا اینها نبی مکرم اسلام نہ صحابه صحابہ کرام انجام نداوین تابعین ندا انجا هم را انجام نداوین پس متاثر نہ باشید لیک در اونها میخوانے بہ خصوص ترکھا بھی زیادہ میخوانے اندونیزی ہا زیادہ میخوانے اینها یہ گناہ ہیں اینها ثابت نیستن همین دعا همین جا ثابت ہے کہ رب انا عطانا فی دنیا حسنا و فی الاخره حسنا وقنا عذاب النار یہ ثابت ہے و ایک دعاے دیگر ہم بسلا انجا سالیه از انجا تا انجا یک دعایی که است که اللهم کنی اینی به ما رزقتنه آباد ایک پیفی سر دعای طولانی هست اگر هم نخوندی اشکال نداره اما هر دعایی میتونی بکنی سرت فاین کن دعایو کمر آزاد بکن با زبان خود بروچی فارسی عربی دعایو کن زیک بخند تلاوت قرآن هم جایزه اما این قرآن بگیری مسافر بگیری بکنی این کار خلاف عدب هست کار درست نیست قرآن نگید چون اینجا بی احترامی قرآن میشه و خیلی ها دیگه مست قصد برای دیگران سوری ها داری آهسته کسی خان اشکال نداره اما اصلش همون ذکر خاندن و دعا خاندن و تصفیحات اینها هستن پس اینجا تواب شما تمام میشه حالا در تواب, در تواب نیت فرده هست چرسیدن فرده هست و داخل مسجد باید تواف بیرون مسجد الحرام بیرون بچرخیدم نه و داخل مسجد الحرام تواف را انجام می اگر خانمی مزدور بود حالا خانم مسجد نمی آید می رود مساقل خونه می کند تا که پاک بعد از اون امر خود را انجام می در واجبات تواف اینه بدانید با وضو تواف کردن در حالت پاکی واجبه اگر بدون وضوح تواف کردید جریمه داره باید گزفن نکشویده اما اگر فراهوش کردید تواف کردید بعد فورا یادتا آمد که من وضوح نداشتم جریمه آمد فورا از اول تواف بکن اگر دوباره از اول تواف را انجام بدهید دوباره جریمه شما برداشته میشه جریمه از بین میرود بسرطی که دوباره انجام بدهید اگر انجام ندادید این جریمه دوباره بازم می مانده پس برابرین اگر ترک واجه می شود جریمه آمد فورا دوباره انجامش بده تا جریمه ساقت میشه اگر انجام را داری جریمه شما لازم می حالا در نگام تقوام ایک چیزی که برای مردان هست داره اول رسیدید استباه و رم دیشب هم گفتی استباه را احرام پوشیدید لباس احرام را از دیر بغیر سمت راست و این سمت راست بدن بغر بعد اوریان باشه اوریان لخت و بالا میانداد تا آخر تواه باید همین بیرون بیمانه ده و در ست اول رمی این دستار اینجوری گرفته حالت دوندگی بحلوان ها باید اونجا دیگه حرکت کنید نبی رو کرنسرا این کار انجام داد بخاطر قاتل مشکین و با امام اتباع نبی اکرم صلی الله این سنت است ایر انجام بدیم خاصه مرحله خاصه دوره بیت الله بیشتر هم نه برای قانون ها این لازم نیست احرام خانم ها رو کی شا گفتم بازم تکرار میکنم خانوم لباس احرام خانوم همین لباس هست اینجا میتونه شه فقط صورت باید بیرون باشه لباس رنگی پوشید اشکال نداره جواهرات پوشید اشکال نداره دستکش کش دست اشکال نداره کفش جورا پوشی اشکال نداره برای فالوم اینها اشکال نداره اما اگر کفش هم نکوشه بهتر هست اما احران در صورت با صورتش میگون باشه مگر اگر نامحره میدسید پایین میکشه شرطی فاصله باشه اینا بیدی شرط توزدی زادی. و اما در مرد کفش های احران باید کفشی باشه اینجا ما آوردن این کفش که یا باید، بالای پا بالای پا. جایی که تسمه ها بسته میشن این لخت و اوریان باشه از این, بپوشی. از این کفش ها بپوشید علی از زیر کفش باش جا آوردن یا هم کفش های دیگر علی اینکه همه تو دلن پای فقط بالا بای محل بستنه، محل بستنه، باید محل بستن محل لبستنه تسمه باید لخت باشه شخاله هم بیرون باشه اما اگر تسمه گذاشتی از زیر شالنگ گرفت اشکالی ندارد بعضی نمیتون را راه برن یه ترسمی می از پشت پا از دیر شطاله ایه. اینجا دی اشکالی ندارد پس درابرین در این صورت اینجا تغواف و تمام میشه و زرک نماز تغواف را میخانین و اما یه چیز هم بگم هنگان تغواف کردن کسی و من صحبتی کردن لفیقی و صحبت کردن گناهکار نمیشه سوال پرسیده شد جواب دادید گناهکار اگر تشنه شد آب زمزم چون در کل مطاف آب زمزم خیلی زیاده اگر تشنه شد دوار آب کرد اینگام هم اشکال نداره و گناهکار هم نمیشه اما اگر نماز شد اینگام طواب نماز رسید وقت نماز رسید قد کن نماز بگید از جایی قد کردی از همونجا شروع کنید مثلا اینجا اقامه شد شما قد کردید تکان کردید و رو از جایی قرد کردی از همونجا را دوباره شروع کن. مگر اینکه دار داری میشه شما داری اینجا میجایید. از همونجا میلی تواف بیا. من داری تواف میکنم. هر جرسیزی بعد اشکالی هم نداره. و بعد از دون دیگه برای رفتن به طرف صفا و مروه. واقعی میگی برای صفا و مروه یک بار دیگر اجر جر اسود را دوباره بروسی میزنی. اینجا هم اصطلاح یعنی این دفعی نهم شد و انگامی کمی خود گیری برای صفا مروه یک اصطلاح انجام می کنی. تقریبا موازات همین صفا مروه است. قرار گمره کنید از اینجا مستقید پوشتر نگاه کنید و اشتری صفا به طرف صفا از اونجا میری به طرف صفا و اونجا کارا کار انجام میرید حالا کار می کنی. توی صفا هنوز هم تو هست تراشیده شده اما هنوز وجود داره، الان داخل شیشه کردم و جای سنکاری کردم اما خود کوه هست چون نزدیک قیامه دیگه دابتر ارد از اینجا بیرون میاد پس کوه صفا هنوز هم این هست علب کوهش تقریبا اینجا و داخل این کوه هست اینجا که هست اینجا جایی ساده مستقی از اینجا نگاه کنی ستونها خیلی زیاده اما نگاه کنی بیت الله معلوم میشه وقتی بیت الله رو دیدیده بعد از زیارت بیت الله دیگه به طرف بیت الله می ایستید و دعا می اول تکبیر الله اکبر لا اله الا الله و آواز اونان این تکبیرات را میگویید بل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحكم وهو على كل شيء قدير را این دعا ریاد یاد میگیرید لا اله الا الله وحده لا شريك له لهول ملک و لهل حمد و هو على كل شيء قدير اینو حتما یاد بگیرید چون که این ذکری هست که خیلی زیاد در حج خوده میشه این ذکر علی بوده دعای علی بوده این همینجا یاد بگیرید خیلی آسون هست و این آلا اینجا همین دعا رو میخونید بعد میری به طرفه به اصطلاح اونجا اون طرفه صفا میست دست‌ها رو بلند میکنید و دعا میکنید اینجا محل قبولی دعا هست پس اینجا خوب دعا میکنید و اول <سؤال> الله أكبر لا إله إلا الله سيمره لك الله أكبر لا إله إلا الله دخل بعد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء عديد بعد ذلك أنزباده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده على إن دواش عدمته نيأكله عمم نحر يأكله ودوارته آميكوله بعد از اون این دعا رو میخونید اللهم انت قولت ادعونی استجیب لكم خدا یک تو گفت دعا بکن من قبول میکنه آیه قرآنی ادعونی استجیب لكم حتی بعض میگن این دعا می. این صفا و المروه تن شاعیر الله تم الحج ال بیت علی این آیه قرآنی میخونن با دعا کنید دعا میکنید که محل قبولی دعا هست بعد از اون که این دعا رو خوندید حالا کجا صفا از صفا دوباره حد کردیم حالا صفا دیتو حالا از این از اینجا به طرف مربع اون طرف مربع هست اینا دو تا کور بودن ارکت می آرام آرام سی متر مونده سی متر مونده به این لامپا والا سخت نگاه می لامپای سبز زدن لامپ سبز رنگ کرد حالا اینجا هم شام داشتیم از سی متر مونده به لامپا حالا می از این لامپ تا لامپ مسافت کوتاهی هست اینجا میدوید. نبی م اسلام دویدند انبیا دو بیا دو. حضرت و حضرت هم اینجا دوید بخاطر آب. پس می دوید تا بعد از سعیید از او محد عبورکن. خانمها نمیند. خانمها آرام آرام خانمها اننگتواقع شان تک نمیند آرام آرام توقف میکنن. اینجا خاونها نمیدهند. آرام آرام می روند. اگر کسی اگر همسرش مرا بود یا کی از فامها، اون ورز این لحظه منتظر باشه تا که بیاد. این مسافر از تمر مروه خیلی طولانیه. اینجور کنجد نزدیک نشان میده، نزدیک نیه مسافر طولانی. اگر خسته شدی، استراحت کردید اشکال نداره میتونی بیشی. اگر آب نوشیدی، آب هست. آب نوشیدی، آب هم اشکال نداره میتونی بی آب بیشی. بعد از اون پس تا بالای این بالای رو به الله می الله می و دعا می می اینجا حالا شد یک سای، یکی تمام شد دوباره از صفا از مروی به طرف صفا برمی برمیگردید دوباره بیت الله در دید خود قرار میدهید دعا می دوباره بار نمیگردی تا برگشت اینجا نوشه 3 تا در هم باید بدوید در رفت و برگشت بین این دو تا باید بدوید و امیر اسی دوباره اینجا تصیر صفات 6 تا دوباره بار نمیگردی کی 4 تا بر نمیگردی 5 تا سایه هفتم اینجا تمام میشه روی مروه اگر روی مروه سای شما تمام نشود این هفت تا نشودن اشتباه کردید یعنی. باید روی مروه هفتا بشن اینجا اگر هفتا شدن خس اینجا دیگه شما باید یک بار دیگر اونجا باید هفتا بشن اگر هفت سایه تمام شد بعد از اون درکت نماز مستحب واجب نه درکت نماز مستحب اتباره میه داخل متاخ جا جای متاخ و آید درکت نماز مستحب می خانی. اگر کسی هم نخان اشکال نداره هم بهتر از حج حجر کامل و تمام احکام انجام بدهید پس دور که نماز بعد از صفا مروه هم اونجا مستحب هست و اینگاه میگداری صفا مروه میگنید هم دعا میتونید و میستید می حالا یه مسئله بینید فاصله بین تواب و صفا مروه تواب کردی خسته شدی، نشستی یک ساعت استراحت کردی اشکال نداره یا متصل لازم نیست خط بعد توالتماشی مستریم برای صفامروی اگه کسی بیماری داشت یا خودش بیمار بود یا خسته شده بود یا بانوی بیمار داشت استراحت بکن بله به خستگی رو صفامروی انجام میده وقتی که صفامروی انجام دادی اینجا دیگه عمره شما تا اینجا تمام میشه خلاص شما یک عمره تمام شده حالا اما اینجا یک چیز هم در وقت بگم این تواف توقف میکنی مثلاً این گامی کردن وقتی هفت دور تمام شد توقف شما تمامیم. اگه کسی بیگیر که من هشت دور میذارم دویی دور دیگه میذارم. اگر یک دور دیگر زد توقف دیگر واجد میشه باید هفت دور دیگه بذارم. پس اینجا دل بخوای نیست که من هشت طایید میذارم نه طایید میذارم گراید که میتونه این نه. اگر اینجا همه فراموش کردی میکی اما فراموش نکنید جالسی یعنی دور هشت هم رفت تواف بعدی واجب میشه ولو از نیش آن, آن رفته باشه اینجا هفته تمام شد بندی یه تواف تا اینجا رسید تو پر نمیتونم حالا نمیتونم نشد حت تواف باید تمام بشه این تواف رو اون واجب شده پس بنابرای تا اینجا به سفا انجام ما انجان از شما حدیتان تمام شده و عمرش ما تمام شد میاد بیرون از احرام برای خروج از اهرام موهارو تراشیدن یا کوتاه کردن این واجب هست یامور میتراشید یا کوتاه میکنی و کوتاه کردن هسدق باید انداز یک بند انگشت باش ازمی کمتر هم جائز نیس یک بند انگشت و موها رو کوتاه نی یک چهارم سر را کوتاه کردن برای خروج از اهرام واجبه یک چهارم سر برای خروج از احرام واجب اگر کسی ایکارو نکر لباس توشید دم لازم میشه یا تواف کر بعد از اگر سر و تراشید بازم دم لازم میشه پس اما اگر کسی الان اونجا میبینی بخصو برابران افغانی که ماشاالله آشغان زیاد تواف میکنن هر سری یک چار و سر اونا خیلی زیاد تواف میکنن خیلی زیاد عمر اگر کسی یکبار حالا نیست سر از و میان بیرون تنها یک چهارم سر تراشیدن مکروه تحریمی است کوتاه میکنی تمام سر کوتاه کنی اگر میتراشید کل سر را تراشید تنها یک چهارم سر انجام ندهی پس برای اگر کسی اونجا آمد اما سرش کل بود نوش کل بود یعنی کچل بود اونجا واجب کیو فقط میشه و هر کار حالا اونهای کمور نداره تقدر تیغ والا سر واجبه تا از احرام بیا بیرون. حالا بیا حالا چیزی که رو بیرون نه این هم نشو باید تیغ رو سرش حرکر بده تا که این از احرام بیا بیرونه پس بنابری اینجا بگی شما عمره شما میشه عمره تمام عمره که تمام شده حالا شما لباس چون که تنها نیت عمره کردی بودی. لباس احرام را بیرون میکنی اول سر میتراشید اول سر میتراشید بعد میری لباس بیرون میکنی حالا غسلی کردی بهتر را را اشکالی ندارد لباس بیرون میکنی برای شما همه چیز حتی هم حلال حتی همسر هم حلال میشه همه چیز حلال هر کاری همیتون انجام میریم و در این مدت تا روز هشتون در وقتی منتظر روز هشتون میمانید حالا تو ا خارس و تواف، پس تو اللہ رب العالمین میفرد که انتاهی را بیتی لیت ابراهیم اسماعیل بیت اللہ را پاک برای تواف کنندگان اول تائفی نعورد پس اونجا از نخل کنندن تواف کردن افضل تر چون تو تنها تواف اونجا صورت میگیره اینجا تواف نیست، اینجا نقل بیتونه بخونید اما تواف نیست، اونجا سایت تواف توافم وقت مکروه نداره تواب وقت مکروہ نداره لحظه تواف جائزه تواف حال لحظه تواب جائز انجام بدهید و بعد از هر تواب في دور نماز هم واجب است بعد دور نماز واجب را به خالی که در اوقات مکروه نباشد اونجا هر اینجا دیگه شما از احرام بیا بیرون و تربیه. روز هشتم روز هشتم اسمش یوم تربیت یوم 8 تا یوم تربیه اسم عربی است در روز هشتم احرام میبندید حالا احرام کجا میبندید داخل خود مصافی خانه جای روزی احرام میبندید بعد مستحب هست بیاید حرام مستحب بری بیت الله بیت الله میری یه تواف در بیت الله انجامیدید مستحب همینست یه توافی میکنید و بعد به طرف مینا حرکت اما این چون که در روز هشتم انگام رفتن به منا خیلی ترافیک میشه خیلی سنگین میشه شب هشتم حجاج میبرند. میبرن مستحب این است که مستحب و صدق این است که اونهای که توانایی دارن یا بلد هستن جاها رو میدونن بهتر است که اینها روز هشتم از اینجا برن ولی سوالی نست آیا امره نفلی برای پدر و مادر جایزی؟ بله امره نفلی برای پدر و مادر برای مردها ها برای زنده ها، تواف نفلی نماز نفلی همه جایز ها میتونید امره بکنید تواف نفل بکنید برای مردها ها ببخشید برای دیگران در حال پس روز از روز هشتم سنت همین است که داخل حرم بمانید است تواف مستحب انجام میدید بعد از محل پشت صفا تونل هست دو تا تونل هست یه تونل مخصوص ماشین و وسیلهای نقلیه هست و یه تونل برای پیاده روا پیاده میرم مخصوص با روشته دوشته که مشات یعنی کسانی پیاده می کندرم مسافتش هم خیلی دوره زیاد 5-6 دو کیلومتر هست اگر میتونید پیاده میرید اما چون که شما اولین بارتون هست اونهای اولین بار هست امکان در خیمه ها رو در منا پیدا نکنن پس سایی کنی همون مسئول کاروان بری تا در منا سرگردان شی، امکان سرگردانی هست پس روز هشتم، الان ما میریم از بیت الله توافو کردیم و حرکت میکنیم اینجا اول هنگام احرام نیت فرده چون داره شما حج میکنی اینجا باید نیت حج چی میگی؟ اللهم ان ی اريد الحج فيسهل لي وتقبله مني بارلا من اراده حج داره آستانه فرما و از من بپذیر پس اول نیت بل لباس می نیت میکنید تلبیه لبیک الله اللهم لبیک تلبیه گویان در مسیر کی میره علی تلبی با آواز در به خانود میرید لبیک الله و لبیک لبیک لا شریک لک لبیک این می و به طرف منا حرکت میکنید ام یک نقطه که جا بگم تا که الله فراموش کاری حالا اینجان میخواد از احرام بیرون بیایید حاجی که در احرام هست آیا میتونه سر شما رو بتراشه نه اگر اون حاجی در احرام هست اعمال خودش را تمام کرده و خودش هم میخوا از احرام بیرون بیاید میتونه سر شما رو بتراشه اما اگر تمام نکرده سر شما رو تراشید دم لازمیشه معوض باشید تو تا دونهار دوستان با هم برنامه اگر تمام کردی هر دو تا تمام کردی سر هم دیگر می توانید بیتراشید به شرطی هر دو تا تمام کرده باشند یا اگر کسی خودش اگر کسی نبود، یه جیلیتی گرفت و سرش رو تراشید خودی هم بیتراشی اشکال نداره و از احرام میال بیرون این هم خوب جا داشته باشید که اونجا خیلی زیاد میاز میشه برای خودو تنطیق تهیه کنی یا با خودتون ببر چونجا راحت تر میتونید که زودتر از احران بیاد بیرون چونجا برید برای داخل آراشگاه ها خیلی منتظر هم میمونید و ریالات شو گرفته گرفتی میشون ده ریال کمیز ده ریال باشه بیست ریال هم میگیرن پس اونجا اگر خودتانو با خود تیمه برید هم راحت ترین پس میری منا اول که آمدی منا از اونجا این هم های منا محل درودی این هم داخل نن الا در این مسجد ازده هم خیلی زیاده. اینجا نیاز نیست شما داخل مسجد بیایید. اینجا آمدید بهتره اما ایوی نامدید نیاز نیست. هر کجا اسخان شما بوده همونجا در اسمحل سکون خودتان بشینید. در پنج وقت نماز را در منا سنت هست. پنج وقت نماز در مناخاندن سنت هست. و شاد را در مناخابیدن سنت هست. این کسی دیگه من شب در مکه میخوابم روزش در منا شمیره مکه میخواب و دوباره میآیم این مکروه هست عمل دیگر نداری ما فقط میره منا برای خوابیدن اونجا خوابی داری شما این در منا خوابیدن و پنج وقت نما نماز نما زور چون فجر در مکه خواندید نماز زور از مغرب اشاف و فجر روز بر اونجا هم و تا روزه پس سنت هست در مناب بخوابین بعد روز نهم، روز نهم اساسی تری روز شما هست با اینجا خیلی مواظب باشید روز نه روز عرفات هست خود جای میرند عرفات نبی بکرنسان فرمودا الحج العرفة حج یعنی عرفات اگر کسی عرفات را حجش بیشه اگر هم نره حجش نمیشه این عرفات این قدر مهم هست اینقدر مهم است. اگر کسی بیهوش باشه بیهوش باشه در کما باشه از اونجا با انگولاس ببرند بیارا حجش میشه اگر کسی فقط قبول کنه از سهره عرفات از او وارد از جبر بیرون حجش میشه اینقدر غادر مهم عرفات اگر کسی عرفاتش پاست شد گه حجش باطل قبل از عرفات اگر کسی با خانو بشه مغاربتی انجام بده حجش باطل میشه حج باطل میشه, حج باطل میشه بعد دوباره سالیبه برای حج بره اونجا گاف کشتر هم لازم میشه علجلتای رو دوباره انشاءالله میگن پس از همه م... کل ممنوعات در امان روز نهم پس روز نهم حالا امروزه حجاج را ها منتقل میکنن میبرند به عرفات مترو زدن مترو که در روز میره اما ها شب میبره سنت اینه که روز نهم از مینا حرکت کنین روز نهم اما اگر می که جار و یک بلد از قاخر جامیونی شد برید شد برید اما اگر توانای دارید رفتن روز عرفات به عرفات سنت هست و شب رفتن مکروه هست و کسانی که می روز برند خدا خونه که اونو تلویز شما روز بیوشته عمر بعد روز منتقل می که اما خیلی از غجاج را شب جا به برای بردن به عرفات؟ و میری آرآفات وقتی به عرفات وقت رسیدی، اونجا هم حمام، سرویس خیلی فراوانه. ای یک استحمام اونجا به است. مستحب است که استحمامی رو انجام می‌دهیم. دسته‌های عرفات مسجد برو داد. وادی ارنا هست. و کرایا وادی ارنا مسجد اونجا هست. حالا مسجد نمی‌ره. او مسجد که در مناهه است، مسجد خیفر، مسجد انجانی مسجد. ی مسجد. این مسجد هست که این مسجد در ورود عرفات. به معنی وارد میشید مسجد میرسید یک قسمت این مسجد، یک قسمت دیگه در اینجا داخل عرفات نیست، بیرون از عرفاته. وادی ارنم میگم. بیرون. باشماره سایلی که مسجد میبریم. خیلی از دهامه. اگر خواستی مسجد میبریم، ازی مسیرهای منطقی مسجد وارد نشید. اینقدر قط شدیده. امکان دادن تلفات هست. بار کردم در این مسیر فتخرم. خیلی خطرناک، خیلی خطرناکه. سه یک از این مسیرها وارد مسیر، امکانات دیگر. تو بعضی میان و مسیر خلاف وارد میشن دیگه. امکان تلفات خیلی زیاده سیدیار. نیاز نیست که شما در مشهد ببینید. کل این ارقام که ما از میرسی تابلوهای بزرگ نصب کردم نوشته که بدایت ارقا. بدای عرفات ابتدای عرفات واغلب طلب امور در هر جای این صحرا بی استیل قبول است اگر کس بیمار یا خانومی داره میتونه در تصویر همون جایی است عرفات همونجا هم بی استیل قبول است اما بهتر است که اینجا جاول رحمت هست اینجا بیاید چون این صحرا عرفات چه ببعض از اقوال علما میفرمایند که محل ملاقات حضرت آدم و حوا هست. اینجا ملاقات کرد وقت از دیگر جدا و به زمین آمدن اینجا ملاقات کردن پس براوری اینجا حجای اینجا میرسه این همه بیدهتن اینا همه حرامن این ای کارو رو کردن در این کار انجام میلید اینها حرامن جایز نیستن این ای کار رو نکن بیت الله بیاد که بیت بیاد حالا این قسمت ای این هست مرتظم. مرتزم اینو بگم چون اول لگوشته حالا وقتی توافت تمام کردی دور هفتم اینجا میرسید همین قسمت تنها همین قسمت در از اینجا تا اینجا بخلد قبل سر از حجر تا در سینه مرتظم اونجا میرسید در سهار بالا دیوار سینه را با دیوار میچسبانید سورتا با دیوار با بچسبید در سابره میکنی و دعا میکنیم. این محل قبولی دعا هست حالا اونجا ایک شرب نکنید که حالا مالا اینجوری بکرم حیاب ماری نشید این فرصت گیر نمیاد آن بار هم گیر اومد یا رفتی شد باز مردی شما اونجا برسید توی ازدام خیلی زیاده پس اونجا گرسی دستها رو بالا میکنی روی دیوار بیت الله میچسبانی صورت سینه با بیت الله باید بی بچسبه با بعد دعا میکنی محل قبولی دعا اینجا چسبان سینرا و اینقدر دعا اینقدر گریه قادر گیریه کل که صحابه تراهم این محل قبولی دعا و این انجا انجا ای کار انجام دید پس در عرفات اونجا دیگه جائز نیست اونجا این کار انجام ندید شما کار مرتب ندارید. تالا بعضی بالا سنگها میرن بالا کون میرن رو سمیزنن اینها نمی این کارها به و خلاف در صلی پایین جا حالا اینها این خود این نیلوهان نظامیان رستوران هستند که برای حجا غذا تهیه میکنن رستوران های خود حکومتی ها، در حال پس در کل ماهوته الحمدلله در کل این ماهوته محله عرفات شما می و دعا و محله وقوف عرفه شما بعد از ظهر شروع میشه بعد از زوال قابل زوال هر کسی رفت و برگشت قبول نیست بعد از زوال وقوف عرفه هست چجوری می اول غسلی کردید اول نماز زور می خاند. اگر رفتید مسجد اونجا نماز رو خوندید و اگر امام امام احرام بستی بود احرام بستی بود خود خاجی بود و امام از ریاض آمده بود شما درکه کشتش می خوند. اگر مسافر بودید اگر مسافر نبودید که بچار کردونید اما تو اونجا مشکل هست شما نماز خودتان را داخل خیمه خبر کردید داخل مثلا خیابون ها هر جا ف بعد از اون روبه الله تقریبا اینجا که پیسالا هاجر خود جبرال رحمتک مستقیم اینجا کامل جوری است. از اینجا کامل مکی جوری مفتی. پروهیبین مستقیم به طرف کامل است. پس بعد از اون روبه مکی مکرر می استید. استاده دست میتونید دعا میکنید. اول میگی که الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا الله استوار لا إله الا الله رو و بعد دعاهای لا الله لا له له الملك و له الحم، وهو شيء خیلی زیاد میخونیم بعد از اون دعا میگید هر دعای دوست الله الله اکبر لا إله إلا الله سوى بي الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له لهو الملك و لهو الحم و كل شيء قبله بعد توقف يعني في سورة فاتحة بعد دوباره شروع بيکنين بيخاري در صحابة طرف قبله و تابه بلندهم دعا بيکنين دعا بيکنين تا غروب كارش و بل همين باشي حسد شده استراحت بکن دوباره بلند شو دوباره استای دعا مشغول دعا اونجا جب بخوابید بخوابین بگرین تفریح حالا بینی جبل و رحمت رگاه کنین حالا خیرمه ها نگاه کنین دنبال غذا بینی دوبار استوران ها وقت را به ندهید حساس ترین روز شما و مهم ترین رکن شما همین روز هست بهتر از که بیا جبل و رحمت حالا پاین پاین حالا او روز از دهان ازدهان موج جا رفتن خیلی سخته رسیدن خیلی سخته خانوار با خودتون نبرین پیغام استادن بین زن و مرد جایز نیست با هم بچسبن و خانم از نامحرم فاصله داشته باشند. بالا قورت آمدن جایز نیست تو قورت علی دیگران بالا اینها جایز نیست اینها خلاف سنتن ها پایین رو پایین این صحرای بزرگ اینجا هستن تقریبا قسمتها، ها محل وقوف نبی کریم بوده نبی مکرم اسلام صلی الله علیہ وسلم پایی حسابه بالاکون رفتیان صحاب بال بالاکون رفتیان این خواست بالا رو ببینی یک روز دیگر بینی اما اون روزی خود را سرف تفریح بالاکون نکنی بایی فایی میشی فقط دعا بکن دعا بی و تا غروب کار شما کار فقط تا غروب همین دعا خسته شد بشین دوباره دوباره بلند شدن دعا کردن خسته شد دوباره بشین دوباره دعا کردن و تا غروب کارتو باید حمید باشید قبل از غروب خروج از عرفات جایز نیست اما اگر کسی اونجا خوابید دعا نکرد اشکال نداره حدش قوله بیهوش بود اشکال ندر حدش قبوله فقط رفتن در عرفات مهمه دعا کردن و چیزی کار دیگر واجب نیست اونها دیگه اضافی هستن که کسی بخواه یوادت میتونه قبل از گرور بیرون رفتن از عرفات جائز نیست اگر کسی قبل از گرور رفت بیرون که مسئله تبر مزدلفه یک مصفد لازم میشه و یک مصفدی بکشه اما اگر رفت بیرون دوباره برگشن و داخل سهرا داخل خود محوت عرفات اون گسپن دوباره ساخت میشه و از بین اما قبل از گروه نباید که از خود عرفات و عرفات درید بیرون و گفتم اختلاف زن مرج. مر اینجا عرفات خود عرفات است که نزدیک جبل و خیلی سعی میکنه خانون زن و ختم اونجا برسید این ای تماسه ها حجر را باطل می خرم. باطل نمی اما خرام می خرم. اما کار شیطانی سوره بگیره که حج هم باطل می شه بعد خیلی زیاد معاذه باش اونجا خیلی زیاد دعا می کنی برای خودتان، برای اولادتان، برای ملل برای آخره، برای مردم دعا بکنید و اگر کسی مثل بابی، اگر کسی تا غروب هم خودشو نتونست به عرفات برسونه به طور بیما بی شد بیما شد داخل خودی همون درمانگاه بسته شد امومن اونجا هم براست هست منتقل می اگر نکردن اگر نشد بیمار شدی یا کسی بستگان تا بیمار شود حالا بعد از گروه تا فجر تا هنگام سهرگاه بامداد فرصت هست اگر تا فجر اونجا نرسیدید حج شما باطن شده پس از ظهر تا گروه واجبه اگر کسی نرسید بعد از غروب تاد بامداد باید خودش اونجا برسانند اگر نرسان دیگه مشکل براش درست میشه و حجش باطل میشه بعضی علام میگن که روزی میره توافی قلوت است بوسه میزنند خیلی اینجوری میگه اونجا میمونن بعد از جا میمونن دیگه الله باه بچرا قلوت است توا بون بوسه بزن توا بوسه بزن الله غافل از اینکه باید اونجا باشه حجش اینجا باطل میشه که عرفات را این آقا نگرفته از حتی اینجا عرفات بود و بعد از اختار غروب کرد از عرفات بیری بیرون اما نماز مغرب را اونجا نمیخانید باید نماز مغرب را ترک بکنید نماز مغرب باید در مزدرفه خونده بشه واجبه که بعد اشاق باید عشاء و مغرب باهم جمع کنید این واجبه قرد در خود عرفات نماز اشاره اشار نمیخونید در مسیر هم اشاره مغرب را نمیخونید میرز مزدلفه هم مزدلفه میخوریم ان شاء که الله حجی ما برو نصیب کنه علا رکن افاسی رو گفتید الواجب ان شاء